موسسهٔ تحقیقاتی و انتشاراتی موعود در حوزه مباحث مهدوی های موعود و موعود جوان را با نام امام اسر الله تعالی فرجه شریف، تقدیم همه مشتاقان منتظران میکند تفن تماسص ست وک شش و 8 نشان پستی هارده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 که در سال 1345 هجری قمری در شهر پيشاور پاکستان برگزار گردید این کتاب یکی از جامعه ترین و در عین حال شیرین ترین کتاب هایی است که در این زمینه نوشته شدهاند و اما شرح ماجرا مرحوم سید محمد سلطان الواعظین شیرازی فرزند سید علی اکبر اشرف الواعظین از دانشمندان و خطبای مشهور شیعه بود نصب شریف وی از طریق امام همام حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه منتهی می شود وی در ماه ذی سال 1314 قمری در تهران متولد شد و در سال 1326 همراه پدر بزرگوارش عازم عتبات عالیات گردید و از محضر مرحوم حضرات مرندی و شهرستانی کسب فیض نمود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 که مرحوم سلطان الواعظین در ربیع اول سال 1345 هجری قمری از طریق هندوستان به قصد زیارت امام هشتم امام رضا علیه السلام عازم ایران می شود. بر سر راه خود هنگامی که به کراچی و بنبای میرسد، جراید و روزنامه‌های محلی ورود ایشان را گزارش می‌دهند. دوستان و آشنایان ایشان را به شهرهای دهلی، اگره، لاهور، کشمیر و کویت دعوت می‌کنند. در طی حضور در دهلی، مناظری با علمای هندو و براهمه در حضور گاندی برگزار می شود که در این مجلس مرحوم سلطان الوائزین با گیری از امداد الهی حقانیت دین مبین اسلام را ثابت می نماید. آنگاه به دعوت انجمن اصناعشریه به ریاست سید علی شاه نقبی مدیر هفتنامه در نجف آزم شهر سیالکوت می شود و در این شهر با استقبال باشکوهی مواجه می گردد. در چهارده رجب 1345 قمری با دعوت جناب محمد سرورخان به پیشاور که یکی از شهرهای مرزی پنجاب است آزم می شود. در پیشاور در حسینیه مرحوم بیک رسالدار منبر می رود که اده بسیاری از اهل سنت و شیعه مقیم پیشاور در این جلسات شرکت می کنند.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 چرا شما شیعیان بر خلاف سنت رسول خدا نماز ظهر را با عصر و نماز مغرب را با عشا جمع میکنید این برخلاف سنت نیست حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم گاهی جمع و گاهی به تفریق این نمازها را ادا میفرمودند جناب آقای حافظ آیا همین طور است که میفرمایند نه خیر آن حضرت برای اینکه امت در سختی و مشقت نباشند فقط در سفر و مواقع عذر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 طبق اخبار معتبری که در کتابهای تفسیری شما نیز وجود دارد اصطلاح شیعه در زمان حیات رسول خدا به دستور آن حضرت به پیروان علی ابن ابی طالب علیه السلام شد. کجا چون این خبری بوده که ما ندیده ایم؟ این که شما ندیده اید دیگر تقصیر ما نیست. ما دیده ایم و حق را یافتیم. بدانید که خداوند متعال به کتمان کنندگان حق بعدی داده است ما هم اگر حق را پیدا کنیم روی از آن بر نمیگردانیم شما بفرمایید حق چیست تا روشن شویم در کتابهای خودتون از ابن عباس نقل شده که وقتی آیه شریفه ای ان اللذین آمنو و عملوا الصالحات که هم خیر البریه نازل شد رسول بزرگوار اسلام رو به امیر مؤمنان علی علیه السلام کرد و فرمود یا علی تو و شیعیانت خیر هستید در روز قیامت شما از خدا راضی خواهید بود و خدا هم از شما راضی است و دشمنان تو در حالی که دستهایشان به گردن بسته شده است وارد صحرای محشر می شوند. گذشتی از این روایت مگر شما عمل اصحاب پیامبر را حجت و دلیل نمی دونید. چرا؟ در حدیث آمده به راستی اصحاب من مانند ستارگان هستند. به هر کدام از آنها اقتدا کنید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 از رسول خدا روایت نشده است که خدا مرا به دوستی علی و ابوذر و مقداد و سلمان دستور داده است. مثل اینکه شما تنها همان چند نفری که در صقیف بلوا را انداختن را صحابه می دانید. چطور می فرمایید که ایرانیان پیرو علی ابن ابی طالب هستند در حالی که آنها علی را خدا می دانند؟ باز هم که بدون تحقیق حرف زدید؟ شما با این حرفتان تمام شیعیان ایرانی را علی پرست می‌خوانید و آنها را مشرک و باجب القتل می‌شمارید. ما علی امیرالمؤمنین علیه السلام را بنده صالح پروردگار و خلیفه منصوب رسول خدا می‌دانیم و از کسانی که آن حضرت را خدا می‌دارند بیزاریم. امام ششم ما میفرماید لعنت خدا بر عبدالله ابن سبا که قائل به الوهیت امیرالمومنان علی علیه السلام گردید. به خدا سوگند آن حضرت بنده مطیع خدا بود. وای بر کسانی که به ما چیزهایی را نسبت میدهند که ما در حق خودمان نمیگوییم، جناب آقای حافظ خوب است همان طور که ما کتابهای معتبر شما را میخوانیم. شما هم کتاب معتبر ما را بخوانید تا افترا به شیعیان نزنید نصیحت‌های های برادرانه شما را میپذیرم اما خواهش میکنم اجازه بفرمایید تذکری خدمتتان عرض کنم بسیار ممنون میشم بفرمایید شما با اینکه که میگویید ما درباره امامان خود قلوف نمیکنیم ولی در حرفهایتان مکررن قلوف میکنید هر باری که نام امامانتان را میبرید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 علاوه بر این حدیثی از رسول خدا وارد شده است که می بریده و ناتمام بر من نفرستید عرض شد سلوات ناتمام چیست؟ فرمودند این که بگوید اللهم سل الام محمد و سپس آل محمد را نگوید پس تصدیق کنید که بر آن پیامبر نه تنها بدعت نیست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 همه متفرق شدند. وَنَصَلِّي عَلَى على سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى السَّاقِي عَلَى الْحَوْضِ والصادق علما ويقينا وعلى الكاظب موسى والرضا فضلا ودينا وتقي الخشع الباسط بالجود يمينا وعلى الهاد الذي أشرقك الشمس جبينا ربنا صلِّ فلي على أحمد خير الموسي